سفومین سومین نوع مشتق صفت مشبه است چه <تصفيق> البته اگر اسم مبالغه رو جدادانه حساب کنیم میشه چهارونی به خاطر که اسم فاعل مشتق هست اسم مبالغه هم چه هست مشتق هست اسم محفول هم چه الان بحث مشتقاتی از صفت مشبه بعدين بعد بقدي نوع بعدiaz مشتقات صفات مشابهة هاس باسم فائل العامل ضجرن الفائز فرحن دو الغزال أحور الحصان أشبه أحور ميدون الدمانية هاس عزادي نبى ما قل عزادي قل حرئ أنت حر تکل قوود <تصفيق> غذا و اخاران آهو سیاه چش هست میگن سیاهی چشمش سیاه از اون سفید بسیار سفید بش مین احور چشهای خوب معمولا موصوفه به این سف چشم آهوی داره میگن آره حورو. آره پس حیص ها رو هم رنگ هست رنگ مایل و سفید بله. سفید و سیاه که یکیشون غالب هست الحیوان و اقشان الزرع و ریان الطاجر و شریف الفتا شهم الجندي و شجاع اللس جبار، القائد بطل الحدید و صلب اینا همشون چی بودند؟ سروران اینا همهشون چی بودند؟ همهشون صفت شبها بودند. همهشون چی بودند؟ شریف شهرمنو، تو شجع جبانو، همین اصل صفت. الفتا مبتدا علامت رف زمی تقدیری چون اسم اسم مقصر هست. چی منقوس؟ نه مقصور چی منقوس نه؟ مقصور شحمون هم خبرش هست مرخوب آزمه ظاهری. یعنی جوان چالاک هست جوان چه هست؟ چالاک هست خب نه نه این فتا هست جوان بله این هم فیتیتون آمنو به ربهم جمع همین هست پس الان اوزانش رو میاره الان چیکار میکنه بیایید در قسمت قواعد از صفت المشبهت باسم الفائل صفت مشبه باسم فائل شبیه اسم فائل هست چرا اسم مسوغ من مصدر ثلاثی اللازم اسمی است از مصدر ثلاثی درست میشه ولی لازمات درست میشه أز لازم درس مشه للدلالة على من قام به الفعل على وجه السعود دلالة برشي میکنه دلالة بر كسي كفيل بوسي لأنت شو ده هست قائم شو ده وله بشكل سبوتي بشكل تي باله يعني ان صفت يك درش صابته موغيك بيجيم الجندي وشجاعان يعني شجاعات يك صفت كي هست باله على وجه الثبوت ما نشينا. تعت السفة المشبعة من با من باي فريحة على ثلاثة أوزان. سفة مشبهة أسباب فريحة يفرحه. فإلى يفعله بس وعند ميات. يعني شو ما مغيبه؟ درس ميكوني سفة مشببه روا. فايله يفعله سواعد داره. ألف فايلة. فائلون فائلنا فائل ماضیا اسم مشابه جان اسم فائل خب اسم فاعل دلالت بر انجام دهنده کار میکنه صفت مشبهه همین جوریه بله اسم برای سبوتی نیسته این بله بله ولی اسم فاعل برای الله اینم بعضی میشه اون چیزی دیگه هستین بر اساس هست خب پس از صفت کجا رسیدیم؟ بله برواز فایلون میاد في مدل على حزن او فرح زمانی که کلمهی که دلالت بر نراحتی یا شادی بکند والمعنس منه على فایله مذکرش فایل هست معنسش فایلتون بر وزن میاد، فی مدل علا ایدن زمانی که دلالت بر چی کند؟ او یا زیبایی او لون یا رنگ والموانس منه علا فعلاء موانس بر هم چی هست؟ فعلاء احضر و حضراء اه فعلان سب همین با وزنش فعلان هست فی مدل علا خلووهن زمانی که دلالت بر خالی کردن باشد او امتلاین یا پر بودن کلماتی که دلالت بر این معنها میکنند و المؤنث منه الا فعلا مؤنث بر وزن فعلا هست اینجا نه فعلا دو این امثله رو اگر دقت بکنید امثله رو اگر دقت کنید گفته بود بر سه وزن میاد بر چند وزن؟ سه وزن فعل زمانی که بر حضن یا شادی دلال کند ماننده گروه اول العامل و ضجرون الفائز و فریخون کارگر پریشانه فائز همچه هست؟ شاده دیدید که اسم صفت مشبه بر وزن فعلون اومده بود اگر همین فائز مونس می بود میشد الفائزتو صریح حتن فهمیدید؟ خب حالا اسأل زمانی گفته بود صفت مشبهه بر وزن افعل است که دلالت بر عیب یا زیبایی یا رنگ کند مانند دو مثل گروه دوم و احمر دلالت بر چی می‌کنه زیبایی می‌کنه الحصان اشبه دلالت بر رنگ میکنه پس زمانی که دلالت بر رنگ کند بر وزن اسأل می آید بر وزن چی می آید و اشبه زمانی که دلالت بر ناراحتی و شادی میکرد کر بر میومد فعل می اومد مؤنثش فعلا چون غزاله حوراء بله اومده در کتاب اومده شهبا خب پس اگر دلالت بر شادی یا ناراحتی می کرد بر وزن فعیل می اومد مانند دادیرون و فریحون اگر دلالت بر رنگ و زیبیه و عیب می کرد بر وزن مانند احوار و اشهر و اگر دلالت بر خالی بودن یا قربودن می کرد بر وزن فعلان مانند اچان که این دیگه شکمش خالی هست از ار و ریان اینجا دیگه زرع سیره ریان یعنی سیراب بله یک باب داریم درباره‌اش به نام باب ریان مالکی است. تون در دنیا تشنگی کشیدن. اونجا دیدی بله است. سیر هست که من قرأ یا یاسین اند ذاته یموت ریان و نمیدانن. یا به ریان. خب so بریم جلوتر. ولی اون حدیثو جمهور محدثین ضعیف می‌دونن. بریم جلوتر. تا اصفه تو من باب کرما اوزان شطه اما اگر اگر اون فعلش از باب کرومه یکرونو بود دیگه اوزان مختلفی داره شطای متفاوض مشهورترینشون فئیل هست مانند شریف شروفه شریف فعل هست مانند شهم آورده فعال هست مانند شجاع فعلون هست مانند جبانون فعلون هست مانند بطالون و فعالون هست مانند سولون پس اگر, اگر فعل ما بروزن از باب فعول یفعولو بود مانند شروف یشروفو اون موقع این صفت مشبهه وزنه های مختلفی داره وزنه چی داره؟ که مشهورترینشون ترین فعلو فعیل و فعل و فعال و فعال و فعل و اینا اینا بودن چش که چطوری درست میشه و از چه درست میشه اما عملش عمل صفت المشبه عمل صفت المشبه اشتريت الجواد الأشبة لونه، تبينت لونه لون فاعل أشهد هذا. إن إن ديك فقط فاعل داره مقبول به نادر. كون صفة مشابهة از لازم درست ميشون، بله مدراء سب سيوسفوم قاعدة كل ما جعلنا الثلاثي بمعنى فاعلًا إنه نخندم. براموش کریم ولن یکن علی وزن فهو صفت مشبهه هر چیزی که از سلاسی بیاید به معنی فائل باشه به معنی چی باشه فاعل ولی بر وزن نباشه مانند کریم مانند چی؟ کریم به معنی اسم فائل هست ولی بر وزن نیست فهو صفه مشبهه پس همچنین کلمه صفه مشبهه هست پس همین کلمه چی است صفه مشبهه معنى مانن اسم فاعل امداد ولی مشدده است درست است خب بله مانند این هر چه ما جاء من الثلاثي بمعنى فاعل حرکت لميك بیاید و به معنی چی باشد به معنی اسم فائل باشد ولی بر وزنش نباشد فهو صفت و مشبهتون پس اون صفت مشبهه هست کلمه ای که بر وزن کلمه ای که به معنای اسم فاعل باشه اما بر وزنش نباشه اون چه هست؟ ماننده شریف ماننده کریم و شریف ماننده کریم و چی؟ شروع شریف به معنی اسم فاعل هست ولی بر وزن فاعل نیست شارف دیگه نیست ها؟ پس سیحا شریف صفت مشبه است. هر چی که به معنی اصلاف فاعل باشه اما بروزنش نبخشه پس سیحا این قاعده اینو میگه عمل و